بسم الله الرحمن الرحیم برنام خداوندی بی اندازه‌ی نهایت بارش ستایش خدای راست که آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است همه از آن اوست و در آخرت نیز ستایش از آن اوست و اوست صاحب حکمت و به همه چیز آگاه آنچه در زمین در می آید آنچه از آن بر می آید آنچه از آسمان فرو می آید و آنچه در آن بالا می رود همه را می داند، و او مهربان و آمرزنده است کافران می گویند هرگز بر ما قیامت نمیآید بگو آری و قسم با پروردگار من حقی قیامت بر شما آمده نیست قسم به دانای غیب ذاتی که از او کوچکترین ذرای پنهان نیست نه در آسمانها و نه هم در زمین نه چیزی کمتر از آن نه هم بزرگتر از آن مگر این که همه ای اینها در کتاب روشن درج است تا کسانی را که ایمان آوردن و اعمال شایستان انجام دادن پاداش دهد اینهایان که برایشان آمرزش و روزی گرامی است ولی آنانی که در برابر آیات ما به معارزه شتافتند برایشان عذاب است از عذاب دردناک آنانی را که برایشان علم داده شده است می بینند که چیزی که به تو از جانب پروردگاری تو نازل شده است همان است حق و به راه خداوند صاحب قدرت منی و ستوده هدایت میکند و کافران به تمسخر گفتند آیا شما را به مردی رهنمون شویم که با شما خبر میدهد؟ چون مردید و کاملا پارچه پارچه شدید در این حال باز شما در آفرینش جدیدی قرار می گیرید آیا این شخص بر خدا دروغ را بربسته یا به او دیوانگی آرز شده است بلکه کسانی که باخرت ایمان ندارند در عذاب واقعی و دورترین گمراهی قرار دارند آیا اینها با به این چیزهایی که پیش روی و پشتی سرشان از آسمان و زمین قرار دارد نظر نکردند اگر بخواهیم ایشان را به زمین فرو میبریم یا پارچه از آسمان را بر ایشان میافکنیم. بیگمان در این نشانه است برای هر ای به خدا و ای بیگمان به داود از جانب خود فضیلت دادیم و گفتیم ای کوها در انعکاس دادن آوازی او با او هم کنید و نیز پرندگان را برای او هم ساختیم و آهن را برای او نرم ساختیم به او گفتیم زریهای گشاده و فراخی بساز و در بافتن حلقه های زنجیری آن اندازه را رعایت کن و به اعمال شایسته دست یا بیگمان من به آن چی می بینا هستم و برای سلیمون باد را رام گردانیدیم رفتار صبحانه آن یک ماهر راه بود و رفتار شبانه آن یک ماهر راه بود و برایش چشمه از مثل گداخته شده را جاری ساختیم. و از جن کسانی بودند که با اجازه پروردگار او با پیشروی او کار می کردند و اگر یکی از ایشان از امر ما سر باز می زد با او از آتش سوزان می چشندیم برای او آنچه می خواست از رواقها، تمثالها، کاسه های بزرگی همچون حوزها می ساختند و هایی که بر دیگدانها قرار داده شده بود ای خانواده لاود، سپاسگزاری کنید و تعداد کمی از بندگان من سپاسگزارند. پس چون بر سلیمان دستور مرگ را صادر کردیم هیچ چیز ایشان را بر مرگ او آگاه نساخت جز جنبنده زمین کویه که عصای او را میخورد. سپس چون با زمین افتاد جنها دریافتند که اگر غیب را میدانستند در این عذاب احانت آمیز یعنی این پر پرزحمت باکی نمی ماندن. بیگمان برای قوم سبا در سرزمینشان نشانه ای داده شده بود و آن دو باغستان بود که از راست و چپشان جلب نظر میکرد کرد و ایشان گفته شد روزی را از جانب پروردگار خیش بخورید و با او سپاس گذار باشید شهر پاکیزه و پروردگار آمرزنده چون ایشان از حق رو برگشتاندن بر ایشان سیل بند عرم را فرور رختیم و بجای دو باغستانشان باقستانهای از میوه های تلخ و شوره گاز و چیزی از درخت صدر قرار دادیم این جزایی بود که به ایشان به سبب ناسپاسی ایشان دادیم و جزا نمی دهیم مگر مردم ناسپاس را و میان ایشان و شهرهایی که بر آنها برکت نهادیم و با دایینی های چشمگیر به سر قرار دادیم و در مسیر این راه منزلهای را به مسافت معین مشخص ساختیم و به ایشان گفتیم در آن شب و روز مسئول مسافرت کنید گفتن پروردگارا بین این منزلهای سفر ما فاصله را زیاد گردان و ایشان بر خود ستم کردند. سرانجام ایشان را افسانه ساختیم، و ایشان را به حد و حساب پارچه پارچه گردانیدیم. بیگمان در این رویداد برای هر کسی که بسیار شکی با و نهایت سپاسگزار گذار می باشد، نشانه است. و بیگمان ابلیس پندار خود را در مورد آنها به اثبات رساند که او را پیروی کردند جز گروه از مؤمنان. که او بر ایشان سلطه ای ندارد جز برای اینکه روشن سازیم چی کسی به آخرت ایمان می آورد و چی کسی از آن به شک اندر است و پروردگار تو به هر چیز نگهبان می باشد بگو آنانی را که جز خدا معبود خیش می پندارید بخانید نه در آسمان ها و نه در زمین به مقدار ذره هم قدرتی دارند و نه در اینها ایشان اشتراکی دارند و نه هم هیچ یک از ایشان برای خدا مددگاریست هیچ شفاعتی در حضور او سودی ندارد مگر برای کسی که خودش او را اجازه می چون شون ده از دلهایشان رفع شود در آن وقت با هم می گویند شما چه حکم کرد؟ می سخن حق را گفت و او بلند مرتبه و بزرگ است بگو کی شما را از آسمان ها و زمین رزق می دهد بگو خدا و بگو من آیا ما یا شما برای راستیم یا به گمراهی آشکار بگو شما از گناهی که ما مرتکب شدیم سؤال نمی شوید و ما نیز از اعمال که شما انجام می دهید مورد سؤال قرار نمی گیریم بگو پروردگار ما ما را با هم جمع میکند و سپس در میان ما و شما به حق فیصله می و اوست همان گشایش گر و دانو بگو رای من آنان را که با خداوند شریک بربسته اید نشان دهید نه چنان است که شما پنداشته اید بلکه اوست خدای صاحب قدرت منعی و با حکمت ما تو نفرستاده ای، مگر مجددهنده و بیمدهنده برای همه مردم اما اکثر مردم نمی دانند می گویند اگر راست می گویید این وعده قیامت چی وقت آمده نیست؟ بگو برای شما وعده روز آمده نیست که از آن نه ساعت تأخیر کرده می توانید و نه هم از آن پیشی کرده می توانید کافران می ما هرگز نه به این قرآن و نه هم به کتابی که پیش از آن بود هیچیک ایمان می آوریم. و اگر وقتی را بیبینی که ستمگاران به حضور پروردگار خیش استاده شدهاند، سخنی سخن ملامتی را به یکدیگر حواله می کنند بینوایان به سرکشان میگویند اگر شما نمی بودید ما یقینا مسلمان می بودیم سرکشان به بینوایان می آیا ما شما را از راه باز داشتیم بعد از آنکه حق به شما آمد؟ نه خیر بلکه شما خود مجرم بودید بینوایان به سرکشان می بلکه این دستیسه شباروزی شما بود که پیواسته به ما دستور می دادی تا از خداوند یک تا انکار کنیم و به او هم تایانی قرار دهیم چون مجازات را دیدند پشیمانی خود را پنهان نگه می دارند زنجیرها را به گردان کافران قرار می دهیم آیا جز آنچه عمل می کردن به ایشان جزاداده می شود؟ ما برای هیچ شهر بیمدهنده نفرستادیم مگر آنکه نعمت پروردگانشان گفتند ما به پیامی که شما به آن فرستاده شده اید ایمان نمی آوریم و گفتند ما از مال و اولاد بیشتری برخورداریم و ما هرگز عذاب نمی شویم بگو بگمان پروردگار من دروازه روزی را به هر که بخواهد می یا تنگ می سازد اما بیشتر مردم نمی دانند نداره شما و نه اولاد شما هیچ کدام چیزی نیست که شما را ما به گونه مقرب گرداند مگر کسی که ایمان آورد و عملی نیکو انجام داد چنین مردمی به نسبت عمالی که انجام دادن بر ایشان مزدی دوچند داده می شود و ایشان در منازل بلند مرتبه امین می باشند و آنانی که سایه می کنند تا با معجزه های ما مقابله کنند به عذاب ما حاضر کرده می شود بگو بگو من پروردگارم روزی را به هرکی از بندگان خود که بخواهد گوشایش میدهد یا به او تنگ می سازد. و چیزی را که در راه او خرج کنید او یه آن را میدهد و او بهترین روزی دهندگان است و روزی که خدا ایشان را یک جا جمع کند سپس با فرشتگان بگوید آیا اینها شما را پرستش میکردن؟ فرشتگان میگویند پاکی کی تو راست؟ تو کارساز ما هستی نه ایشان بلکه ایشان جنها را پرستش می کردند و بیشترشان به آنها ایمان داشتند. پس امروز بعضی شما به بعضی دیگر سودی رسانده می توانید و نه همزیانی. ستمگاران می گوییم عذاب دوزخی را که دروغ می پنداشتید بچشید. چون آیات روشن ما به ایشان خانده می شود می این ای نیست مگر مردی که میخواهد شما را از چیزی که پدران شما پرستش می باز دارد و می این ای نیست مگر دروغی بربسته شده و چون به کافران آیات برحق می آید می نیست این مگر جادوی آشکاری. و ما به ایشان قبلا کتابهایی ندادیم که بخوانند و نه هم برایشان پیش از تو بیمدهنده ای فرستاده بودیم. پیشینیانشان نیز حق را تکذیب کردند. در حالی که اینها ده یکی چیزی که به آنها داده بودیم هم نرسیده اند. آنها پیامبران مرا تکذیب کردند. پس مجازاتشان چی بود؟ بگو شما را به یک چیز پند می دهم به اینکه برای خدا دو نفری و یک نفر بپاخیزید و باز بسنجید که بیار شما یعنی محمد جنون عارض نشده نیست وی جز بیمدهندهی برای شما در پیشا پیش عذاب شدید بگو چیزی را که از شما به حیث مزد خواستم آن نیز برای خود شماست مزد من نیست جز به خدا و او بر هر چیز گواه است بگو بیگمان پروردگار من حق را فرو می فرستد و او به نهان های غیب کاملا آگاست بگو حق آمده است و باطل هرگز چیزی را آفریده نمی و نه هم چیزی را اعاده کرده می تواند. بگو اگر من گمراه می شوم خودم شخصا مقصر گمراهی خود می باشم و اگر رهیاب شوم به سبب آن است که پروردگارم به من وحی می فرستد بیگمان او شنوا و نزدیک است و اگر بینی چون می ترسند ولی در آن وقت برایشان خلاصی نیست و از جای نزدیکی گرفتار می شوند و گفتند به آن یعنی قرآن ایمان آوردیم و از کجا برایشان این امر از آن هم دوری از جهان دیگر میسر میشد در حالی که پیش از این در دنیا از آن انکار داشتند و از این راه دور ندیده تیر تاریکی می اندازند؟ و بین ایشان و امیدهایی که به آن دل بسته بودند پرده انداخته شد همچون که از پیش با همانندهایشان چنین معامله شد و ایشان در شک تهمت اندوز ب سر برند